سوره مبارکه صف من قبلا هم ارز کردم که موضوع همه این سوره ها جهاد است تا سوره صف و بعد سوره صف موضوع انفاق میاد خب در سوره صف هم ترغیب و تشویق به سوی جهاد است و در سوره ممتحنه هم تشویق به جهاد بود و زجر برای اون مسلمانانی که در راه جهاد خلل ایجاد کردند خب الله عز و جل در این سوره که این سوره هم سوره مدنی هست یکصد نهمین سوره هست در این سوره ابتدا آغاز می فرمایم با توحید که ما بفهمیم این از مصبحات است ما بفهمیم که جهاد و انفاق و تمام قربانی ها به خاطر توحید است سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تصبیح می قالا و فقط و فقط برای الله ما فی السماوات تمام اون موجوداتی که در آسمانها ها هستن عمز فرشتگان غیر فرشتگان و ما فی تمام اون مخلوقاتی که در زمین هستن و هو العزیز الحکیم علتش اینه دلیلش اینه چونکہ اون ذات غالب هست قدرت ما فوق, ما فوق الاده دارت الحكيم حکمتش کامل است حکیم هست لذا او را تعریف میکنند همه او را مدح و سنا میگویند خب در این سوره هم توحید ابتدا بیان شده هم ترغیب به سوی جهاد است و هم زجر و سرزنش است برای اینکه چرا در جهاد کوتاهی میکنید ببینید بعضی از مسلمان ها با هم دیگه بحث کردن مذاکره کردن گفتن که محبوب ترین عمل پیش خدا چی هست که ما اون عمل را انجام بدیم کاش ما می دونستیم که بهترین عملی که خدا دوست دارد و خدا اون عمل را می پسندد اون چه عملی هست ما همون را انجام می دادیم گاهی ما هم با خودمون فکر می کنیم از علماء هم می پرسیم که بهترین عملی که خدا می و دوست دارد از بندگانش چه عملی هست که من همون کار را بکنم تا خدا راضی بشه این مسلمانان با خودشون همین گفتند خدا تعالی نازل فرمود که بهترین عمل جهاد است اما اینها یک مقداری تکان خوردند چون جهاد یک دستوری هست که بر طبعاً بر انسان سنگین توام میشه لذا مقدار اغلب نشینی کردن خدای عزوجل سرزنش فرمود یا ایوها الذين آمنو ای مؤمنان ای کسانی که شما ایمان آوردید لما تقولون ما لا تفعلون چرا میگوید آنچه که نمی چرا وقتی که میگه بهترین عمل را میخوام خدا که بهترین عمل را بیت معرفی متعارفی می‌کنه اون جهاد فی سبیل الله است چرا اون وقت از جهاد عقب نشینی می‌کنید چرا سستی و ضعف می دهی و خداوند می‌فرماید کبر مقتن عند الله بسیار سنگین است از نظر خشم پیش خدا و ناراضگی ان تقول مالا تفعلون اینکه بگویید اون چیزی که انجام نمی دهید ببینید از ظاهر این آیه فهمیده میشه که اگر عملی ما نمی کنیم تبلیغش هم نکنیم چون که گفتن لما تقولون چرا میگویید یعنی نگویید مالا تفعلون اما اصلش این نیست شعن نزول را عرض کردم چون اونها قبلا گفتم محبوب ترین عمل بسیاری از علماء میگویند که اصل ملامت و سرزنش خداون بر لما تقولون نیست بر لما لا تفعلون است یعنی لما لا تفعلون ما تقولون چرا اون چیزی که میگوید عمل نمیکنید یعنی سرزنش بر این گفتار نیست بر این عمل نکردن است و بسیار سنگین است پیش خدا این که شما انجام ندهید اون چیزی که شما میگوید خب عمل محبوب چیه؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا همانا الله دوستدارد کسانی را که میجنگند در راه الله صفا یک صف یعنی در یک صف همه میجنگند که انهم بنیان مرصوص اون صفشان چنان قوی است چنان مستحکم است چنان دژی هست اون سفشان. که بنیان و مرسوس مثل یک بنیانی هست بنیان بنا را میگن دیوار را میگن ساختمان را میگن چنان ساختمانی که مرسوس مرسوس میگویند اون دیواری را اون بنای را که در مواد اون سرب را و فلز را ذوب کردند یعنی دیوار آهنین امروزه میمارها بهش میگن دیوار برشی دیوار بروشی معمولا دیوارهایی که آهن و ملات با هم مقاطی میکنن کنند سیمان و ملگیرد را با هم کنند این دیوار دیگه آهن است خداوند می اون مجاهدانی را خدا دوست دارد که در راه الله می جنگن مثل یک دیوار آهنین هستند یعنی هیچ تهدیدی از دشمن هیچ خطری از دشمن اونا را تکان نمی دونه اغب نشینی چنان قوی ایستادن در مقابل دشمن خدای عزواجل مومن قوی را خیلی دوست دارد مومنی که با شهامت است مؤمنی که با غیرت است مؤمنی که شجاعت دارد مؤمنی که در مقابل دشمن استاده از این آیات معلوم میشه مجاهد را خدا دوست دارد لذا خداوند دوست داره کسانی رکه یقاتلونه فی سبیلیهی می جنگن در راه الله صفا در یک ردیف و در یک صف چنان صف بسته که انهم بنیان گویا اون بنایی هست مستحکم و مرسوس مرسوس یعنی با آهن و با فلز ذوب شده و گداخته شده لذا شما اگر می خواهید که محبوب خدا بشید جهاد کنید و اذ قال موسی ربتش را می خواهم کنم توجه کنید شما اگر می مؤمن محبوب خدا بشید جهاد کنید مثل پیروان موسی نباشید که موسی را کردند چطور موسی را کردند جهاد نکردند موسی گفت که ای قوم خدا دستور داده بریم بجنگیم گفت یا موسی اذهب انت و ربک فقاتلا ای موسی تو و ربت برو بجنگید انها ها قایدون ما اینجا نشستیم ما منتظرین وقتی که پیروز شدید ما را دعوت کنید بیاییم لذا اینا موسا را کردند الله تعالی می فرمه مثل اونهایی نباشید که موسا را کردند هر گایی که نیاز به وجود شماس برای اسلام کمر حمت را ببندید مردانه بیستید در مقابل دشمند و اذ قال موسى لقومه زمانی که موسی گفت بقای مشیا قوم لی متذونانی، قوم شما چرا مرا ازیت می کنید؟ و قد تعلمون انی رسول الله علیکم این معنی از ایزاس نباید من ازیت کنید. در حالی که شما میدانید من رسول خدا هستم بسوی شما. مر خدا فرستاده به سوی شما چرا حرف منو گوش نمیکنید چرا از من اطاعت نمیکنید خداوند میفرماید این قوم اطاعت نکردن فلم مازاغ و زمانی که کج رفتند منحرف شدند به انحراف رفتند ازاغ الله قلوبهم خدا هم دلهاشون را منحرف کرد هیچ وقت اینها راست نشودند همیشه تا آخر زندگی کج ماندند و مسیر را کج رفتند به همین خاطر تا به امروز ملعونند و مورد خشم و خدا هستند والله لا يهدي القوم الفاسقین این بیان عادت الله و بیان سنت الله است خدای عزوجل هدایت نمیکنه یعنی توفیق هدایت نمیده چنین قوم فاسقی را اینا هیچ وقت مسیر هدایت را و راه هدایت را نخواهند دید ببینید اینها اینجا موسی علیه و السلام از قومش خواست که حامی باشند یاور باشند ولی اونها نکردند و باز ببینید عیسی علیه السلام هم از قومش همینو را ما در پایان می خانیم که ایسا گفت که من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله یک گروه به دعوت ایسا لبیگ گفت اما یک گروهی دیگر دعوت ایسا را نپذیرفت این را خدمت شما ارز کنم اون گروهی که دعوت ایسا را لبیگ گفت باوجودی که در اغلیت بودن حواریون ولی دین ایسا را به تمام عالم پخش کردند و منتشر کرده. امروز بزرگترین جمعیت دنیا را مسیحیان و عیسویان تشکیل میدهند. این به خاطر چی بود؟ به سبب جهادی که هواریون کردند و تبلیغ و فعالیتی که هواریون کردند در آخر سوره حدید شما خاندید لذا امروز از نظر جمعیت کمترین جمعیت را در دنیا کدوم دین دارد یهودی ها دارند جمعیتی نیست در مقابل بقیه ادیان در مقابل اسلام و مسیحیت که هیچ چی در مقابل بعضی از دینهای قلابی و آرزی که بعداً ظهور کردن هم یهودی ها چیزی نیستند لذا خیلی جمعیت یهودی ها کم هست از بودائی ها از زرطشتی ها از همه جمعیتشون کمتره چرا چون اینا به خاطر دین خودشون هیچ فداکاری در حالی که اینقدر پیغمبر که از این نسل آمده بعضی میگوین چار بعضی گفتن یک هزار پیغمبر از فرزندان اسحاق آمده تا زمان ایسا یک هزار فقط از بنی اسرائیل شما فکرش رو بکنید این همه پیغمبر از قومی باشد امروز کمترین جمعیت دنیا را از نظر دین خودشون تشکیل میدند پس این به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جهاد نکردند جهاد برکاتی داره اللہ میفرمائید و اذ قال عیس ابن مریم زمانی که عیس ابن مريم گفت یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل اني رسول الله علیکم من رسول خدا هستم، فرستاده خدا هستم، بسوی شما مصدقل لما بین ید من التورات تصدیق کننده هستم، تایید کننده هستم، اون توراتی که قبل از من هست، ببینید، ایسا علیه صلات و السلام آمده بود تا دین موسی را تکمیل بکند، گرچه بعضی میگویند که آمده بود تا اون دین را تحریف کند و ببخشی نسخ منسوخ کند نسخش را اعلام کند و دین جدیدی یعنی همه یهودی باید چکار بکنند دین یهودی را بذارند و بیاند دین مسیحی بشند چونکه ایسا در جایی میگوید وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ من آمدم برای شما حلال کنم بعضی از اون چیزایی که حرام بود بعضی میگن این که آمده که حلال بکنه اونایی که حرام بود پس این نسخ است منسوخیت است عیسی آمده دین یهودی را منسوخ بکنند اما بعضی میگن نه اکثر علماء میگن که ناسخ فقط دین اسلام است دین عیسی دین مکمل هست یک سریع زعفا و نقصایی که در اون دین بود ایسا آمده بود اونا را چی بکند؟ تکمیل بکند اینجا هم ایسا میگه مصدقا لما بین یدی من تورات تصدیق کننده هستم اون چیزی که قبل از من هست از تورات تورات را تصدیق میکنم و بعد از من یک دین میاد برای اون دین آمدم به شما خوشخبری بدم و مبشرم برسول یعطی و ای مسیحی ای یهودی ای بنی اسرائیل من آمده مجددهنده هستم رسولی را که یاتی من بعدی می آید بعد از من اون رسول بعد از من می آید اسم او احمد نام او چی هست احمد هست نام رسول الله صلی الله علیه و در آسمان ها احمد هست در اونجا احمد هست و اینجا محمد هست احمد معنایش را قبلا خدمت شما گفتم احمد یعنی کسی که از همه بیشتر خدا را حمد می کند از همه بیشتر خدا را تعریف می کند ببینید خدای عزواجل احکامی که برای ما بیان فرموده این احکام از نماز گرفته تا حج و زکات تا روزه تا بقیه اذکار و اوراد در هر قدم حمد خدا است در هر قدم از کنم تعریف خدای عز و جل است غذا می خوری الحمدلله الذي اطعمنا یا اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمين حتى از وزو خانه خارج میشی الحمدلله الذي اذهب عن الازا و آفان اینا رو که تو میخانیم چون رسول اللہ خانده هر کاری که انجامی ده کسی عدسی میزنه الحمدلله میگه لذا بر عملی بر هر حرکتی بر هر فعلی حمد خدا هست در این شریعت هست در تعلیمات این رسول مکرم هست لذا این از همه احمده یعنی از همه بیشتر خدا را حمد کرده به این خاطر به احمد می و ارز کردم در کتاب های اسم رسول الله به عنوان فارقلیت بود فارقلیت یعنی از همی بیشتر خدا را تعریف کننده همی معنی احمد میاد الله می فرماید یعطی برسولی یعطی من بعد اسمه احمد اما این رسول که آمد فلما جاؤهم بالبینات این رسول بعد دلائل آمد با موجزات آمد قالو هذا سحر مبین این جادوی آشکاری است چه چیزی جادوی آشکار بیانات را گفتند موجزات را گفتند فلما ومن اظلم مممن نفترا علی الله الكذب حال ببینید وقتی که موجزات را جادو گفتند <تصفح> کفر کردن به پیغمبر کفر کردن به رسول این خودش یک داعیه جهاد است این خودش زمین جهاد را فرا، فراهم می کند که این پیغمبر فرستاده خدا است او را متهم به جادو می کند و بر خدا هم دروغ می گویند لذا باید با جهاد بشه ومن اظلم و من اظلم ممن افترا على الله الكذب دليل دوم جهاد دليل اول جهاد هذا صحر مبين دليل دوم جهاد چه کسی ظالم تر است از اون ظالمی که افترامی می گوید بر الله دروغ را و هو يدعى الى الاسلام بسوی اسلام فرخند میشه همین یهودی ها مسیحیان دروغ می گفتند اینا را فرامی خواندم بیای مسلمان بشید می گفتم توصیه نباید از دین خودمون خارج بشیم والله لا يَهْدِ القوم الظَّالِمِينَ چنین قوم ظالمی را خداوند عز و جل هدایت نمی فرماید یعنی توفیق هدایت نمی دی دلیل سفوم جهاد این یهود مسیحیان همیشه و همیشه اینها در صدد چی هستند در صدد خاموش کردن چراغ اسلام همیشه توطئه دارند ببینیم مسلمان باید هوشیار باشد خداوند تعالی میفرماد یوریدون لیطفی نور الله اینها اراده دارند تا نور خدا را نور الله چی هست دین اسلام هست نور خدا را خاموش کنند یوریدون لیطفی او نور الله به با دهانشان با تبلیغاتشان با تهمتای نرورایشان با می که این دین را خاموش کنند خیلی طاعت کردند در زمان رسول الله یهودی ها مسیحیان در سوره آل عمران خواندیم چقدر شبهات در بقره هم خواندیم چه اعتراضاتی هی به مشرکین درس میدادا مشرکین از مکه میرفتند مدینه چند روز می ماندن پای درس یهود تا یاد بگیرند که چه چطور اعتراض کنم بر پیامبر اسلام یک سری سوالات پیچیده یک سری مباعث علمی مطرح می کردند تا اینکه رسول الله آجز بماند از جواب و حتی شما خاندید که گروهی را میفرستادن، شما برید ایمان بیارید بعدا دوباره کفر کنید تا اونها عقیدهشون از دینشون برگرده اونم دو چار شک کو تردید بشند امروز هم همین توتیعها هست امروز دشمنان اسلام یهود و نصارا دانشمندهای خودش، دانشمندهایشون شب و روز دارن برنامه ریزی می کنند. بر علیه اسلام بر علیه قرآن بر علیه پیامبر گاهی فیلم درست میکنند گاهی کاریکاتور درست میکنند گاهی پیامبر را از نظر مردم دنیا خشن جلوه میدهند دین را دین خشونت جلوه می دهند جهاد را فسادی می نامند و در این فضاهایی که در اختیارشون هست فضاهای حقیقی و مجازی در این شبکه های محواری شب روز یک کانال نه چندین کانال شب روز نشستند و بر علیه اسلام دارم برنامه ریزی میکنم جوان مسلمان نه آگا و نه گاهی متاسفانه از روی جهل میشینه به پای صحبت اینها کسانی که اطلاعات ندارم برای اونها ضرر دینی دارد. یه داستان های دروغین درست میکنند. Hey کتاب هم مینویسند قبل ازم خدمات شمارش کردم مستشرقین خودشون رو بدون تعصب نشون میدند میایند از پیغمبر خدا صلی الله علیه السلام تعریف میکنن. از بعضی از رشادت های پہلوانان اسلام مثل ابو بکر صدیق عمر فاروق تعریف میکنن ازشون که مسلمان اعتمادش به اونها چی میشه جل میشه مسلمان فکر میکنه که این بیچاره این نویسنده تعصب نداره این ابو بکر را تعریف کرده این عمر را تعریف کرده این علی را تعریف کرده عثمان را تعریف کرده تعریف میکنه تعریف میکنه اما آخر چیکار میکنه زهرش را میریزه یک سری تشکیکا ایجاد می‌کنند شک ایجاد میکنه لذا با این کارش میخواد شکار بکنه اول مسلمان را شکار بکنه بعداً در قلب مسلمان شک و تردید ایجاد کنه نسبت به اسلام نسبت به قرآن نسبت به احکام چه سوالاتی نسبت به حقوق زنها که ما همیشه این روزها خانیم لذا الله عز و جل می ف... این همیشه اراده دارند این اراده فقط مال زمان قدیم نیست امروز هم هست ولی خدای از و در هر زمان دارت چنان مجاهدانی دارت خدای از و جل چنان بندگان مخلصی که انها تمام نقشه های را تمام توتاهای اونها را از بین می برند به همین دلیل هست بزرگترین چیزی که برای اونها خطر است زنگ خطر از جهاد است جهاد چون یک مسیری هست که هر که میره ایمانش کامل میشه جهاد چون انسان وقتی که آماده میشه برای خدا جان بده و مال بده خدای عزوجل بهترین چیز رو به او میده ایمان رو بهش میده در این دنیا در اون دنیا الان می که خدا بهش بهشت رحم میده رضا الله می فرماید یریدون لیطفیو نور الله به افواههم انها اراده دارن تصمیم دارن خاموش کنن نور خدا را با دهان نشان و گوی هایشان با یک سری شبهات که القا کنند در قلوب مسلمانان والله متیمم نوریه در حالی که خداوند تکمیل کننده نور خودش است ولو کرهل کافرون گرچه کافران نپسندند برای کافر خوشایند نیست که روز به روز نور ایمان گسترده تر میشه روز به روز حتی مساجد اروپا هم آبادتر میشه خیلی این ناراحت کننده هست برای کافر اگر جلوش را بگیرن بدتر میشه میدونند که انسان اون آزادی نیست اینها این را دوست ندارند اما اینها روانشناس و جامعه شناس خیلی میدونند که الانسان و حریص فی مامونی ها اگر جلوی مسجد را بگیرن جلوی قرآن را بگیرن صد تا دیگه بیدار میشه مگه چه خبره اونها میان تحقیق میکنند اونها هم می لذا اللہ می فرمائے وہ الذی ارسل رسوله بالہدٰی اللہ ان ذات یہ اس کے رسول اشرا حمرا بہ ہدایت فرستاد حمرا بہ ہدایت, ہدایت یعنی سبب ہدایت سبب ہدایت چئے قرآن ذالک الكتاب لا ریب فیہ ھدٰی للمتقین سبب ہدایت چئے ان کتابے بس اگر می چاہیں ہدایت در دنیا پخش بیشے و مردم همه هدایت بشند چه غیر مسلمانان چه مسلمانان بعضی از مسلمانان هم منحرفند بعضی از مسلمانان یا دوچار انحراف فکری هستند خرافاتی و بعضی دچار انحراف عملی هستند گرفتار شهوات خودشون هستند گرفتار هوا و حواس نفس هستند لذا خداوند هدایت فرستاد هدایت چی قرانه هو الذی ارسل رسوله بالهدى الله عزتی اس کی رسول خودش اشرا ہمرا با ہدایت یعنی سبب ہدایت فرستاد و دین الحق ہمرا با دین حق فرستاد لیظهره علی الدین کله تا کہ این دین را غالب بگردان بر همه ادیان به اعتبار چی هست این دین ہم به اعتبار حجت غالب هم به اعتبار ظاهر غالب اما به اعتبار ظاهر شرطش اینه که وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اونجا اگر شما مسلمانان بر مقتضای دین عمل کنید شما غالب میشید شما دیدید که در دیدید و خان دید که در مدت کوتاهی مسلمانان در مکه جای نداشتند پناگاهی نداشتند به صورت کار می‌کردند در دار ارقم مخفیانه در از تاریکی شب استفاده می کردن از ساعت خلوت استفاده میکنی، یک یک می‌آمدند جای نبود اما همین‌هایی که جای نداشتند خدای عزوجل به اعتبار فیزیکی چطور غالبشون کرد بعد از مدت کوتاهی در زمان خود رسول الله در حیات رسول الله تمام مدینه و اطراف مدینه فتح شد آمد مکه فتح شد حنین فتح شد طائف فتح شد تمام قبایل اطراف گروییدن کم کم رفت تا یمن در زمان رسول الله دین پیش رفت بعد از رسول الله در زمان خلفا سبحان الله سی سالی که پیشگویی فرمودند خلافت خلفای راشدین بیش از نصف جهان زیر چتر اسلام درآمدن بزرگترین ها که در اون زمان ایرانی ها و رومیها ها بودن یک گروه مجوسی بود یک گروه مسیحی بود همه اینها مسلمان شدند و در اشغال مسلمانان قرار گرفتند کشورها و بلادی که اون زمان عربی نبودن بعدن عربی شدن اینا اون زمان نه مصر عرب بود نه لیبی عرب بود اینا تمام کشورهای آفریقایی بودند نه مغرب عرب بودند نه عراق عرب ها بودند غیر از یمن هیچکدین عرب نبودند عراقی ها فارسی بودن جز ایران بود مصری ها اینا غیر مسلمان بودن عرب نبودن اما وقتی که سپاه اسلام آمد کلم فرهنگ عوض شد الان نمیدونیم سرسیه به غیر از ایران که زبان عوض نشد بقیه تمام کشورها حتی زبان عوض شد لباس عوض شد فرهنگ عوض شد همه شدن عربی لذا ببین در یک مدت کوتاهی در یک مدت کوتاهی تمام دنیا زیر پرچم اسلام در آمد این غلبه غلبه چی هست غلبه ظاهری هم هست تنها غلبه از نظر حجت و از نظر دین نیست پس انایت داشته باشید که هر دو غلب مراد است اما این غلبه ظاهری در صورتی است که مسلمانان معاقعا مجاهدان راستین باشند در جاهای گوشهای از دنیا هر جامعی بینید که واقعا به درستی جهاد میشه اونجا موفقیت نصیب میشه ولو اینکه یک جماعت اقلی هست یک جماعت اندکی هست لذا الله می فرماید لیوظهرهو علا دین کل تغالب بگردان این را بر همه ادیان هم به اعتبار ظاهرا به اعتبار حجت ولو کری ها المشرکون گرچه مشرکان این غلبه را نخواهند مشرکان این غلبه را نپسندند یا ایوها الذین آمنو هل ادلکم بعد از اینجا خداوند عز و جل ترغیب میده مؤمنین را به سوی جهاد واقعا این نکتر خدمت شما عرض کنم که باید جهاد در قلب ما باشد یعنی چطور در قلب باشد انقدر باید ترسو باشیم که بگیم خدا نکنه جهادی پیش بیاد این اراده باید در دل ما باشد که هر وقتی که شرایط جهاد فراهم شد و اسلام عزیز این دین عزیز خدا اگر از ما جان خواست ما جان تقدیم میکنیم اگر انگیزه جهاد باشد و انسان با همین انگیزه بمیرد در بعضی روایت هاست که اگر بمیرد موتش از نظر درجه و فضل موت شهادت است اما کسی هیچ به جهاد فکر هم نکند و اراده هم نکند و همیشه دعا بکند که خدا نکناتین این چیزی بشه. اون وقت اگر این موت موتی بالش بیاد موت جاهلیت است. بنابراین این این هم تشویق که به ما مسلمانان در قرآن میشه حتما ما نیت بکنیم، اراده بکنیم که هر وقتی که در هر جای زمین جهاد فراهم میشه ما یا اینکه از نظر فیزیکی مشارکت داشته باشیم یا از نظر مالی مشارکت داشته باشیم یا نظر زبانی و تبلیغ مشارکت داشته باشیم یاز از نظر حداقل دعا و نیایش مشارکت داشته باشیم برای مجاہدین دعا کنیم خلاصه بنوئی که در توان ما هست در کنار مجاہدین باشیم لذا الله تعالی به بی بینی چه وعده‌ای میده يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان هل أدل آیا من راهنمایی بکنم شمارا على اتجارتی بر تجارتی خدا میخاد ما را راهنمایی بکند و یک تجارتی را به ما بده چنان تجارتی که تنجی من عذاب علیم شمارا نجات بده از عذاب دردناک از عذاب دردناک نجاتو تون بده اون چیه ببینید خدا معامله میکنه بسیاری از افراد مسلمان نما در دنیا با حکام معامله میکنند خودشون را به چند دلار میفروشند ای انسان ای مسلمان ارزش تو از این دلارها خیلی بیشتر است ارزش تو چی هست قیمت تو را فقط جنت میتونه پر کنه بس خیلی تو ارزش داری لذا خدای عزواجل اینجا میگه سمنی که من به شما میدم پولی که به شما میدم و شما را میخواهم و میخرم شما جان و مالتون را به من بدهیم من به شما بهشت میدم عوض بهشته عوض انسان مسلمان فقط و فقط بهشته لذا اگر کسی میخواد خودش را بفروشد ارزان نفروشد هر چند دلار بفروشیم خودمون را ارزان فروختیم لذا بهتری معامله و طرف معاملے الله از که خودش انجا ذکر می تجارتی من میخوام با شما بکنم چنان تجارتی که تنجیکم من عذاب علیم اون چیه تؤمنون بالله و رسول اول اون چیزی که شما باید داشته باشید این بیان سمن است ایمان خدا و رسول ایمان واقعی اگر باشد ایمان راستین اگر باشد ایمان به توحید و به یگانگی خدا باشد وقت ترس و بزدلی از دل خارج میشه و بعد از اینکه ایمان آمد و تجاهدون فی سبیل الله بأموالکم وانفسکم جهاد کنید در راه الله با مالتان با جانتان ذالکم خیرلکم ان کنتم تعلمون اللہ می فرمائی این است برای شما اگر شما بدانید اگر بدونید این بہتر ہے بهتره. بہتر ہے انسان که به هر صورت می میرد اما چه خوشا اون مرگی کہ اون مرگ بخاطر خدا و رضا خدا باشد خب شما که خودتون را به خدا بدید ایمان بیاوری جهاد کنی خدا به شما چی میده ببین بیان مبیع یک یغفر لكم ذنوبکم الله به جهاد تمام گناهان شما را می بخشاد دوم و جنات تجري من تحتها الانهار و داخل میگردان شماره در اون جنات و در اون باغاتی که جاری است من تحت الانهار از زیر کاخا و قصرهاش نهرها جاری است و مساکن طیبه و در اون جنات مساکن هست قصرهای هست بسیار زیبا این قصرها و این کاخا کجاست؟ فی جنات عدن در اون جنات جافدانه و در اون جنات همیشه گیست و بعد از اینکی این بهشت را خدا تعریف می فرمد می فرمد ذالک الفوز العظیم این هست رستگاری بزرگی فضیلت جنت رستگاری بزرگی که شما به اون نائل می شید این بهشت است و اخرى تحبونها و اخرى تحبونها تنها این نیست که فقط در آخرت خدا به شما بده هنوز در دنیا هم به شما میده یک چیزی که شما طبعاً او را هم دوست داری کسی اگر مجاهد را همیشه بگم برو کشته شو تا بهش بیت میرسه دیگه نامین میشه فقط کشت شدن ما اینجا عزت میخوایم تو دنیا در دنیا عرضو داریم پرچم خدا به احتزاز در بیاد پرچم دین خدا بلند بشه بر همه قلها بر برف بشه همه جا دین خدا و پیام خدا رسنده بشه پس الله عز وجل می فرم اونم هست و اخرا تحبونها و اخرا یعنی یک نتیجه دیگر ولکم خله اخرى برای شما یک پاداش دیگری هست یک عطای دیگری هست که تحبونها تب انو رحم دوست داری اون چیه نصر من الله وفتح قریب نصرتی از جانب الله اگر شما جهاد کردید وفتح قریب وفتح کیون فتح دور قریب علما می فرمائند اشاره حسن بسری می فتح قریب فتح روم و ایران است که خداوند اینجا وعده کرد اون نصرت هم شد فتح هم شد هم بهشت به صحابه رسید هم رضای خدا به صحابه رسید هم فتح رسید و تمام این بلاد مسلمان شدند و بشر المؤمنین ای پیامبر من این مؤمنین را مجده بده اینهایی که جانان جهاد می کنند اینهایی که برای هیچ چیزی خودشون پروا ندارند از همه چیز اشیایی که دارن دریغ نمی کنند اینها را بشارت بده یا ایها آمنو امنوا انصار الله بعد از این خدای عزوجل عامه مؤمنین را دعوت میده که همه شما یار و یاور دین خدا باشید انصار الله یعنی انصار دین خدا باشید مثل حواریون که چطور انصار دین خدا شدند، عیسی به اونها گفت که من انصاریالله، همه گفتند لبیک عیسی، شما هم به دعوت محمد صلی الله علیه وسلم لبیک بگوید. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان كونوا أنصار الله شما باشد أنصار الدين خدا باشد كما قال عيسى بن مريم همان قونه عيسى بن مريم فرمود للحواريين نبي حواريون حواريون كيف كانت قبل ما خاندهم قرتي حواريون معنى يش سفيد كنندها إلا باس معنى يك معنى اللغوي هست إنها سباغ بودن کسانی که لباسهای مردم را رنگ می میشستند تمیز می و تحویل مردم می دادن یعنی یک گروه فقیری که کارشون خدمات بود اصل بعدن حواریون این اصطلاحی شده این معنی لغوی بود که من درس کردم اصطلاحی شده حواریون هم صفوت الانبیاء حواریون به چه کسانی میگویند؟ برگزیدگان انبیا. انهایی که انبیا آنها را برای یاری خودشون برگزیدند و انتخاب کردند الذین خلصو و اخلصو فی تصدیق بهم و فی نصرتهم انهایی که خودشان مخلص بودند و در تصدیق انبیا و نصرت و یاری انبیا از خود اخلاص نشان دادند رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که برای هر نبی حواری هست و حواری من زبیر هست زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه لذا حواریون این خاصان را میگویند برگزیدگان را میگویند کسانی که با انبیا نزدیک نزدیک هستند لذا الله تعالی می فرماید همان گونه که عیسی ابن مریم به حواریون گفت من انصاری الاله چه کسی انصار من هست به سوی الله یعنی زاهبا الاله که به پیش خدا بریم کی مرا یاری میکنند یعنی دینی که من آوردم قال الحواریو نحن انصار الله حواریون گفتن ما انصار الله ما انصار خدا هستیم ببینید حواریون چطور یاری کردند امروز بسیاری از مستشرقین از دانشمندان اروپایی که خاورشناسان هستند ادعای دروغینی دارند میگویند که ما در دین مسیح اصلا جهاد نبود عیسی تا آخر عمر جهاد نکرد عیسی علیه و سلام دستور جهاد را صادر کرد قرآن در حکایت میکنه جهاد در همه ادیان بود در دین موسی که مشخص یهود انکار نمی کنند انبیاء دیگه هم جهاد داشتند ایسا ری صلی اللہ به هوارین گفت که چه کسی می آید و مرا نصرت می کند آمادگی داشت اما قبل از اون خدای عز و جل را رف کردند بردند چون قست جانی را کردند و خداوند نخواست که ایسا شهید بشه بالاخره ایسا چون مقدر این بود آخر الزمان دوباره بیاد و جهاد بکنه ایسا باز میاد جهاد میکنه گرچه مسیحیان قبول ندارن اما اینکه که مسیحیان نمیتونن انکار بکنند که بعدن پیروان عیسیا جنگیدند جنگ های بسیار زیادی در گرفت بیشتر جنگ ها با یهودی ها بود لذا بعد از عیسی علی و سلام یاران انسان جهاد کردند، تلاش کردند تا سبب انتشار دین ایسی سلام صلات و شدند همان دور که بعد از رسول الله صلی الله علیہ وسلم یارانشون تلاش کردند که سبب دین رسول الله در تمام عالم شدند بعد از رسول الله دین در مصر هم آمد در لیبی هم آمد در شام آمد در عراق، ایران هند، پاکستان، افغانستان این بلاد تا اینکه حتی به چین رفت، اون طرف به اندولوس رفت، به افریقا رفت، به اروپا رفت، روم، ایتالیا، جز اروپاست، تمام قاره‌ها دین رفت به خاطر چی؟ به خاطر که حواریون رسول الله هم جهاد کردند. همانگونه که حواریان عیسی جهاد کردند. لذا حواریون گفتن که نحن انصار الله حواریون چکار کردند فآمنت طائفة من بنی اسرائیل گروهی از بنی اسرائیل ایمان آورد ببرکت جهاد و کفر الطائفة گروه دیگر کفر کرد ببینید حواریون چکار کردند فلم یزالو ینصرون الله بالجهاد القولی والعملی تفسیر محامی مئی دو چیز هستند که اسلام را رشد می دهند دو چیز هستند که اسلام را بپیش میبرند دین خدا را بپیش میبرند برند دین ایسا را منها بپیش بردند اون زمان دین عیسی دین حق بود یکی تبلیغ و یکی جهاد انجا هم هست در تفسیر معیمی فلم یزالو ینصرون الله الجهاد القولی والعملی لذا این گای از نادانی ما هست که وقتی در مسیر تبلیغ میریم بر علی جهاد صحبت میکنیم در مسیر جهاد میریم بر علیه تبلیغ صحبت میکنیم اینا در واقع دو شعبه هستند از دین که هر دو کار دین را پیش میبرند پیروان ایسا هر دو ربی پیش بردند رسول الله صلی الله علیه وسلم هم در میدان جهاد به عنوان بزرگتری مجاهد شرکت کرده نه یک میدان ده ها میدان. و هم به عنوان تبلیغ بزرگتری مبلغ بودند یا ایوه رسول بلغ ما انزل علیک وقتی که تبلیغ میکردند صحابی میگه چنان ما متاثر میشدیم که تمامی موهای بدن بلند میشد یعنی هم رسول الله مبلغ بودند هم مجاهد بودند هم مربی بودند هم مدرس و معلم بودند همه ایشو دین لذا نیازی نی... وارد یک شعبه بشی شبه شعبه دیگر را معطل بکنیم یا بر علی شعبه دیگر ما صحبت بکنیم لذا الله می که فآمن الطائفة من بنی اسرائیل و کفر الطائفة یک گروه ایمان آورد و یک گروه کفر کرد کفرشون چی بود؟ به ایسا گفتن ابن الله به عیسی گفتن که جز خدا به عیسی گفتن خود خدا این کفره. اما گروه دیگر موحدان بودند فایدن الذين امنوا على عدوهم فاصبحه ظاهرين الله عز وجل می فرماید ما کمک کردیم تایید کردیم کسانی را که ایمان آورده بودند بر دشمنانشان نصرتشون کردیم کمکشون کردیم فاصبحه ظاهرين اونها شدن ظاهرین یعنی غالبین غالب شدن غالب باچی شدن بسیاری میگم به سیف با شمشیر غالب شدن و بسیاری میگن بالحجت والبرهان با دلیل و برهان و مدرک غالب شدن خدا مند عز و جل هست هر وقتی که اهل حق در مسیر حق قرار بگیرن خدا کمک میکنه. چه در میدان جهاد باشند با باشن باشن شمشیر حجت شم غالبشون میکنه. چه در میدان مبارزه فرهنگی باشند و علمی باشند خدای از و از نظر حجت و برهان غالبشون شمی کنه. صدق الله مولانا العظیم